848. در این هنگام که رفته رفته روز به پایان می رسید اول حسن را به تالار چهارم بردند که این تالار از هر جهت بر تالارهای قبلی برتری داشت در اینجا شمدانها و چپتراخهای بزرگ همه تالار را غرق در نور کرده بودند و تنلوی پرته نور جروه تالار را چند برابر می کرد های قدی باستا به اشیارا منعکس می ساخت و عبالحسن از روشنایی فراوان و زیبایی سیمای دوش لذت می خلیفه هم در محل خود مشغول لذت و خندیدن بود و برخورد و سخنگفتن عبالحسن را با دوش و بانوان زیبا تماشا میکرد و او را تحسین می‌نمود. در اینجا محلی برای انواع نوشیدنی ها مخصوصا شراب های در نظر گرفته شده بود که هفت عدد شرابدان بزرگ ساخته شده از نقره لبریز از بهترین و کمیابترین ترین شرابهای دنیا در آن جای داده بودند و در کنار آن نیز سه گیلاس کریستال هم دیده میشد. در تمام مدت روز ابوالحسن به جای شراب آب آشامیده بود زیرا در بغداد رسم مرین بود که شراب را فقط هنگام شب می نوشیدند. به هر حال در این تالار هم هفت دوشیزه بسیار زیبا دیده میشدند که در انتظار خدمتگزاری به ابوالحسن بودند. باز هم در اینجا صفره گسترده ای بودند و انواع میوه و خوراکی و خوشبار از بهترین نوع در جای داده بودند. عبالحسن میخواست با یکی از آن محرویان سخن بگوید. اما صدای موسیقی به قدری بلند بود که نمیتوانستند سخن یکدیگر را بفهمند. عبالحسن در حالی که دست یکی از آن دوچ زیبا را در دست میگرفت اشاره کرد که نوازندگان دست از نواختن بردارند. آنگاه با ملایمت و مهربانی آن دوشیزه را در کنار خود نشانید و نام او را جویا شد. دوشیزه داد که نامش خوشی مروارید است. اول حسن با حالتی پرمه به او گفت شما سزابار چنین نامی هستید زیرا دورشت دندان شما چون صدف به شما چنین حقی را می دهد و مرا را میسازد می سازد که از دست زیبایی شما جام شرابی بگیرم تا بر حالت مستیابر آن افزوده شود. خوشه مروارید فورا جامی از شراب ناب لبریز کرد و با حرکت زیبا به عبالحسن تقدیم کرد عبالحسن هم با لبخندی آن را گرفت و در حالی که نگاه آشغانهی به او می‌کرد، گفت جامی هم برای خودت بریز تا به سلامتی تو بنوشم خوشه مروارید بلافاصله جامی برای خود ریخ و قبل از نوشیدن ترانه زیبای آشغانهی را زمزمی کرد که از لطف گیرایی صدایش عبالحسن از خود بیخود شد بعد از نوشیدن آنجا، ابوالحسن نوشیزه دیگری را در کنار خود نشانید و وقت خوردنی به او تعارف کرد و ضمن نامش را پرسید و او پاسخ داد نامش ستاره‌ی صبح‌گاهی است. ابوالحسن به این دوشیزه گفت چشمان تو زیباتر از درخشندگی ستاره است. آنگاه از او هم شراب خواست. ستاره‌ی صبح نیز بیدرنگ جامی از شراب برای ابوالحسن آورد و جامی هم برای خود سیل. ابوالحسن سراغ سومین دوشیزه. که نام او روشنی روز بود رفت و از او جام شراب خواست و به همین ترتیب تا هفتمین دوشیزه ادامه داد و از دست هر کدام جامی نوشید و سخنی عاشقانه و شاعرانه به همین آنها گفت و لذت و خشنودی خلیفه را که شاهد رفتار او بود به اوج خود رسانید وقتی که ابوالحسن از دست هر یک از این محفی جا جامی نوشید خوش آخرین جام را از شراب لبریز کرد و پنهانی از همان گردی که شب پیش خلیفه در شراب ابوالحسن ریخته بیخته بود در جام او داخل کرد و جام را با تنازی هر بیشتر به دست ابوالحسن داد. او هم با نگاهی عاشقانه میخواست آن را بنوشد که خوش به او گفت « ای امیر المؤمنین، دلم میخواست ترانه ای را که خودم همین امروز ساخته برای شما میخوااندم. فکر میخوام از آن بدتان نیاید ابوالحسن گفت با تمام وجودم آمادهی شنیدن آن هستم. و به عنوان خلیفه به تو دستور می‌دهم آن را بخوانی زیرا من می‌دانم بانویی به زیبایی تو مایه هوش و استعداد فراوانی هم داشته باشد بانوی زیبا عود برگرفت و آن را با آهنگی که سروده بود کوک کرد و با چنان نغمه فریبنده و نوازشگری خواند که اول حسن را به اوج شادی رسانید و به حدی شیفته و مفتون صدای روح بخش او گردید که تقاضا کرد آن آواز را دوباره تکرار کند هنگامی که بانوی ماه پیکر هنر خود را تکرار کرد ابوالحسن جام به دست سر را به گوش بانوی هنرمند نزدیکتر ساخت و سخنان محبت را را که شایسته که هنرمند پر آبازه او بود و زبان جاری ساخت و در همین حال که دهانش باز بود چشمانش از زور خواب بسته شد و از خوش رفت و یکی از آن زیبارویان جام ابوالحسن را از دستش گرفت و به گوش ای گذاشت ابوالحسن در منتهای خوشی و مسرت بیهوش شد. بلافاصله به فرمان خلیفه لباسش را که چون نقش نقش بر زمین بود عوض کردند و همان غلام اولی را صدا زدند و غلام ابوالحسن را بر دوش خود گرفت و از در مخفی قصر طبق دستور به خانه اش برد. آنگاه خلیفه با خود گفت: بسیار خوب، ابوالحسن به آرزوی خود رسید و 24 و ساعت خلیفه شد. و پیش و چهار شیخ دیاکار را هم به مجازات رسانید انترالا که از این رویداد خوشنود باشد حال برویم سراغ ابوالحسن که بعد از بیدار شدن به صدا زدن نام بانوان زیبا روی پرداخت و نام یکایی که آنها را زبان جاری ساخت مادر ابوالحسن از شنیدن نام های بانوان چگفتده شد و به سراغ او آمد و گفت پسر مگر عقل خود را از دست دادی؟ ما چنین بانوانی را در اینجا نداریم. حتما خواب دیدهی. ابوالحسن همون نامها را تکرار کرد. مادرش گفت، مگر تو نمیدانی که ابوالحسن هستی و من هم مادر تو هستم. ابوالحسن گفت، من ابوالحسن نیستم. من امیرالمؤمنینم. مادرش با خشم گفت، جلوی زبانت را بگیر که کار دست ما میدهی. تو دیوانه ای که را امیرالمؤمنین میدانی و با خود گفت پسرم دیوانه شده. و شیطان در بدنش رفته که این گونه سخن میگوید، خداوند او را از شر شیطان حفظ کند بیچره مادر هرچه به عقلش می رسید به خار برد تا شاید ابوالحسن را بر سر عقل آورد ولی بیفایده بود مادر می پسرم اگر تو خلیفه ای پس در این خانه محقق چرا زندگی میکنی. ابوالحسن سخنان مادرش را با بردباری گوش میداد و دستهای خود را به پیشانیش می کوبید. تا بداند آنچه را میبیند و میشنود واقعیت دارد نمیدانست آنچه را که درباره آن صحبت میکند در خواب دیده بود و یا آنکه حال موجود خواب است بعد با خودش گفت اینجا خانه من است و این هم مادرم و در حالی که به اطراف مینگریست گفت من هم ابوالحسنم. اما نمیدانم چگونه معتقد شدن که من امیرالمؤمنین هستم چگونه چنین فکری در مغزم پدید آمده است مادر که فکر میکرد پسرش شفا یافته خوشحال شد و خندهی کرد و درباره خواب خواب حسن که تصور خلیفه بودن را در ذهن او به وجود آورده است از او پرسش هایی کرد. در این موقع حسن خطاب به مادر فریاد کرد. عجوزه پیر مواظب حرف حفظ باش. من پسر تو نیستم. من امیر المومنینم. و تو نمیتوانی با سخنانت مرا مجبور کنی که بگویی غیر از آن هستم. در این هنگام مادر به تاسفاران که اگر موضوع صحبت را عوض کند اثر بهتری در حال حسن خواهد داشت گفت پسرم راستی دیروز داروغه به این محل آمد و به دستور خلیفه پیش نماز مسجد محله و همراه با چهار شیخ ریاقار را تازیان زد نمیدانم چند ضربه به آنها زدند ولی بعد از نواختن تازیانه در وسط میدان آنها را بر پشت شطور وارونه سوال کردند و از این محل کردند. و جاشی فریاد میزد. این است سزای کسانی که در بین مردم ایجاد دو دستگی و آشوب کنند و آرامش مردم محله را زنند و در امور خانواده ها دخالت کنند ابوالحسن که سخنان مادر را شنید بیشتر ام بر او مشتبه کردید و یقین حاصل کرد که خودش امیرالمؤمنین است و سخنان مادر حالت روحیش را شدیدتر تر کرد و در سخنان مادرش فریاد کشید من نقصر تو هستم و نه ابوالحسن و با تعریفی که از دیروز کردی من به طور یقین خود امیر هستم و بدان که به دستور من داروغه به محل آمد و پیشنماز مسجد و چهار تن شیخ مزاحم را تا زیان زد نگه نگویی که من خواب دیدم من در کمال بیداری این دستور را دادم و خیلی دلم میخواست بدانم چگونه به این خانه آمدم خدای بزرگ سپاس را سپاس بذارم که مرا به عنوان خلیفه مسلمین برگزیده و سخنان تو نمی تواند نظر مرا تغییر دهد. مادر ابوالحسن که یقین کرده بود پسرش دیوانه شده گفت خدایا به این پسر رحم کن و او را ببخش و مرحمتی کن تا دوباره عاقل شود. بعد و ابوالحسن گفت از این حرف ها نزن که خطرناک است. دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد. خدا آقابت من را بخیر کند در این واقع ابول به سوی مادرش آمده گفت، کاری نکن تا ترتیبی دهم که تا آخر عمرت پشیمان شوی. تو نباید روی حرف من که امیر هستم حرف بزنی و فوراً چوبی را از گوشه اتاق برداشت و مادر بیشاره را تهدید کرد. مادر هم می گفت خدا به تو ررح کند که اینگونه با مادرت که تو را به این دنیا آورده رفتار می کنی. تو حق نداری خود را خلیفه تصور کنی.خلیف ای که فراموش کردم بگویم، دیروز یک هزار سکه تلا به من مرحمت کرده ابوالحسن که سخابتمندی خلیفه را از زبان مادرش شنید به کلی دیوانه شد و فریاد کشید چرا نمیخواهی بفهمی که این هزار سکه طلا را من به داروغ فرمان دادم از خزانه ی کشور برای مادر ابوالحسن بیاورد آن وقت رو به تشکر از من سعی میکنی مرا که خلیفه هستم به اشتباه بیاندازی و بگویی من پسرت هستم اما بدان که رفتار تو بی مجازات نخواهد ماند سپس در نهایت خشونت دست به چوب برد و شروع به زدن مادرش کرد که براسر شیون مادر همسایه ها به یاری او آمدند همسایه ها به حسن گفتند چرا مادرش را که به این خوبی تو را پرورش داده کتک میزنی مگر از خدا نمی ترسی بدون آنکه که پاسخی بدهد در قیافه همسایه خیره شد و گفت عبالحسن کیست که از او سخن میگوید آیا من هستم که مرا عبالحسن خطاب میکنید؟ با این پرسش همسایه ها بیشتر تعجب کردند و گفتند تو مادرت را به جا مادری که یک عمر با تو زندگی کرده عبالحسن گفت من نه مادرم را میشناسم نه شما را من ابوالحسن نیستم من امیرالمؤمنین مؤمنین هستم وقتی عبالحسن این عبارت را گفت همه فهمیدند او دیوانه شده گروهی به تیمارستان رفتند و مسئول تربیت دیوانگان را آوردند و او هم با چوب دستی مخصوص چندین ضربه شانه ابوالحسن وارد آورد که او را بیحال کرد. سپس و پای او را تلا پیچ کردند و به تیمارستان بردند و مدت سه هفته هر روز پنجاه ضربه تازیانه روی شانه های او مینواختند تا امیرالمؤمنین بودن را فراموش کند. مادر ابوالحسن هر روز برای دیدن فرزندش به تیمارستان میرفت و از درد و ناله فرزند اندوهگین میشد ها و قسمت پشت و طرفین بدن ابوالحسن در اثر ضربات تازیانه سیاه شده بود و آنقدر جای آنها دردناک بود که نمیتوانست به هیچ سمتی بخوابد از درد ناله می کرد و هر وقت هم که چشم باز میکرد و مادرش را در بی تیمارستان میدید معطلی فرش و ناسزا به او می داد. و مادر هم ناچار به خانه برمی گشت بعد از مدتها رفته رفته از فکر خلیفه بودن افتاد و با خود گفت پس چگونه مدتی خلیفه بودم و چطور وقتی به خانه آمدم بالباسه همیشگی خودم بودم پس جعفر و اقتراماتی من میکردند کجا رفتند آن محفه کران زیبا روی چه بر سرشان آمد اما یادم نمی که من خودم دستور دادم امام مسجد و چهار شیخ فتنه‌گر را تا زنند و به مادر ابوالحسن هزار سکه طلا بدهند این موارد نمیگذارند که من معتقد شوم آنچرا دیدم در خواب بوده خدا میداند بس در من چه آمده است ابوالحسن با این گونه افخار دست و پنجه نرم میکرد که مادرش به دیدن او آمد این بار ابوالحسن پاسخ سلام مادرش را داد و مادرش حس کرد پسرش آرامشش را باز یافته و عاقلان صحبت میکند از مادرش ازخواهی کرد که نسبت به او مرتکب بیحرمتی شده و اعتراف کرد که را که میگفته به خاطر تاثیر خوابی بوده که دیده است از مادرش خواهش کرد عذکاهی او را به آگاهی همسایگانش برساند و به آنها بگوید که ابوالحسن زیر تاثیر خواب با آنها بدرفتاری کرده است مادر ابوالحسن از بهبودی فرزند بسیار خوشنور کردید و گفت پسرم مثل آن است که تو را دوباره زایده باشم برای من تازه به دنیا آمده ای خبری را باید به تو بگویم و آن این است که مهمان تو آن شب هنگام رفتن از خانه در خانه را نبست و شیطان به خانه ما آمد و آن افکار و اوهام را در تو ایجاد کرد خوشحالم که خداوند به ما محبت کرد و تو را از دام شیطان رهایی بخشی دعا میکنم به دام شیطان گرفتار نشوی عبال حسن سخنان مادرش را تایید کرد و گفت من به میهمان خود گفته بودم در را بندد ولی او فراموش کرد و سبب شد این خوابهای عجیب را ببینم وقتی ابوالحسن از تیمارستان به خانه آمد چند روزی استراحت و تقویت غذایی کرد تا بهبودی کامل پیدا کرد و نیروی طبیعی خود را باز یافت بعد از مدتی دوباره به این فکر افتاد که باز هر شب مسافر غریبه ای را به خانه آورد نخست شبی که بعد از مرخصی از بیمارستان به پل روی دجد رف روی نیمکت نشسته بود و مردم را تماشاه میکرد که ناگهان همان بازرگان موسیلی را با غلام سیاهش دید که روی پل مشغول راه رفتن است با خود گفت خدا مرا از شر این جادوگر حفظ کنند که این بلا را به سر من آورده و خواست خود را از دید او پنهان نگه دارد و به همین منظور خود را به گوشهی کشید خلیفه که دوباره با لباسهای مبدل و غلامش صورت بازرگان موسلی راه افتاده بود قصد داشت دنبالهٔ مزاح و تفریح خود را با ابوالحسن ادامه دهد زیرا او اهل تفریح بود و در عین حال سلطانی عادل و با سخاوت ضمنا جریانات بعد از بازگشت ابوالحسن را به از قصر سلطنتی و مقام خلیفگی توسط مأمورین پنهانی خود می میکرد و از شنیدن آنچه بر سر او آمده بود تفریح و خندهی بسیار کرده بود به ویژه که حسن را به تیمارستان برده بودند و کتک مفصلی به او زده بودند خلیفه جلو رفت و به ابوالحسن سلام کرد و گفت اجازه بده تو را در آغوش گیرم حسن خود را عقب کشید و گفت حاضر نیستم با تو معاشرت کنم تو سبب ناراحتی و گرفتاری برای من شدی و کار من به جاهای باریک کشن نشد خلیفه گفت تو مرا به این زودی فراموش کردی؟ ما با یکدیگر دوست بودیم تو یک ماه پیش از من مفصلی کردی؟ تو آدم مهمان نوازی هستی و انتظار نداشتم با من چنین رفتار کنی؟ می دانم که ناراحتی هایی داشته ای اما من دخالتی در آن نداشتم و اگر هم خدمتی از من برایت برادرانه برایت انجام می دهم و تو را دوست دارم و از تو انتظار دارم حالا که اقبال با من یاری کرده. و تو را دوباره دیدهام باز هم میهمان نوازی کنی عبال حسن خلیفه را عقب زد و گفت من با آدمی مثل تو کاری ندارم سگن یاد کرده دیگر به آدمی مثل تو روی خوش نشان ندهم تو میخواهی به زور با من دوست باشی مرا رو رها کن و دنبال کار خودت برو تو را به و ما را به سلامت تو باعث گرفتاری های من بوده من دیگر جرأت معاشرت با تو را ندارم خلیفه در حالی که دوباره ابوالحسن را در آغوش می‌فشرد گفت ای ابوالحسن عزیزم از تو خواهش دارم با من بیمهره نکن سکن ما با یکدیگر رفیق بودیم برایم تعریف کن چه بر سرت آمده که این چنین رفتارت تغییر کرده من خیرخواه تو هستم و اگر بد کرده‌ام حاضرم جبران کنم ابوالحسن به خلیفه گفت سادلوهی و حماقت تو مرا به این روز انداخته است حالا پنشین تا برای تعریف کنم که من بی جهت تو را متهم به بدرفتاری نمی کنم. خلیفه در کنار ابوالحسن روی نینکت نشست و ابوالحسن آنچه را که در یک شبان روز خلافت برو گذشته بود برای خلیفه تعریف کرد گرچه خلیفه همی آنها را میدانست ولی شنیدن آن از زبان ابوالحسن تفریح و شادی خلیفه را تجدید می ابوالحسن ایام تیمارستان و دشنام دادن به مادر خود و حتی بی حرمتی به مادر خود و دست بالا کردن به روی او را برای خلیفه بیان کرد و گفت باعث آن تو هستی اگر در خانه را بسته بودی شیطان به سراغ ما نمیآمد و آن رویدادهای بر رخ نمیداد. من از دفتر خود با خمسایگانم هم شرمنده ام خلیفه سخنان ابوالحسن به خنده افتاد و نتوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد ابوالحسن که خنده او را دید پرسید هنوز تدید داری که تو باعث همه این حوادث بوده ای اگر باور نداری بیا شانه یه مرا نگاه کن که چگون زربات تازیانه تیمارستان آن را سیاه و کبود ساخته که هنوز جای آن باقی مانده است در این نحصه عبالحسن شانهی خدا نشان داد و خلیفه سخت متأثر گردید ابوالحسن را در آغوش گرفت و او را بوسید و مرزرت خواست و گفت آوازش الچبر را در مصاحبت یکدیگر با خوشی می‌گذرانیم و از فردا صبح همه چیز رو به خوبی خواهد رفت. اول حسن با وجودی که با خود سوگند یاد کرده بود با این بازرگان موصلی معاشرت نخوند معاضا در برابر آن همه مهربانی و التماس بازرگان تسلیم او شد و گفت: قبول دارم تو خانه من بیایی ولی سوگند یاد کن آخر شب در خانه را ببندی. تا شیطان دوباره در مغز من ترغیب نکند. خلیفه هم فورا سویان یاد کرد و قول مساعد داد و همین که هوا تاریک شد به سوی خانه ابوالحسن راه افتادند. همین که به خانه رسیدند، ابوالحسن خلیفه را به بالای اتاق راهنمایی کرد و چندین شمدان را روشن کرد و شام و شراب آوردند. ابوالحسن جامی برای خلیفه و جامی هم برای خود از شراب لویز کرد. و بعد از شام به نوشیدن شراب ادامه دادند وقتی خلیفه حس کرد که ابوالحسن کاملا سرخوش از شراب است در عشق بزن و زندگی زنوشویی با او به گفتگو پرداخ ابوالحسن پاسخ داد برادر من آدمی آزاده و نمیخواهم خود را اسیر خانواده و همسر و فرزند کنم عشق من شادی و نوشیدن شراب با دوستان است و اما اگر به بانوی مانند همان بانوان زیبا و هنرمندی که در عالم خواب رو یا دیده هم در همان خوابی که به جای نشسته بودم رو بروشم حاضرم پیمان زن وشویی ببندم اما چنین بانوانی را فقط در قصر خلیفه یا در قصر نخوص وزیر و بلند کشور میتوان می توانیافت. بنابراین بهتر است با همین شراب خود که برای محیاس خوش باشم و با دوستان دوست این را گفت و جام خلیفه و جام خود را از شراب پر کرد و به سلامتی خلیفه نوشید خلیفه گفت این بار به سلامتی همون بانوی زیبایی که در عالم خواب در قصر خلیفه دیدهی بنوشیم آنگاه یک بار دیگر جام های را پر از شراب کردند اما خلیفه با تردستی مقداری داروی خوابآور داخل جام ابوالحسن کرد و هر دو جام های را نوشیدند ابوالحسن فوراً از هوش رفت و دوباره همان غلام او را بر دوش خود گرفت و به قصر خلیفه برد. وقتی به قصر رسیدن خلیفه دستور داد ابوالحسن را به قصر چهارم، همان جایی که آخرین جام شراب را از دست خوشمرواری نوشید و بیهوش شد، و از همان محل به خانه‌ی خودش برده شد ببرند. خلیفه هم دستورات لازم را به کلیه کارکنان دربار و افسران داخل قصر و نخس وزیر صادر کرد. و تمام بانوان هم از تدبیر خلیفه آگاه شدند. فردا صبح خلیفه در محل سابق پنهان شد و به تماشای رفتار ابوالحسن پرداخت. ابوالحسن که آثار مستی و داروی بیهوشی در او به پایان رسیده بود، از خواب برخاست و ناگهان حس کرد که دوباره در همان خوابگاه و قصر است که قبلا در خواب دیده بود و به خود گفت خدا به دادم برسد. دوباره خاطرات تیمارستان و ضربات تازیانه و گرفتاری های آن ایام به نظرش آمد و گفت را خودم را به تو می سپانم خودت مرا حفظ کن با چشمهای نیمه باز دسته بانوان زیبای نوازنده را دید که آهنگ دلپذی را می نواختند وقتی حسن اطراف را نگاه کرد از روی اشیا و آرایش خوابگاه متوجه شد که آنجا همان خوابگاهی است که قبلا در خواب دیده حسن گفت باز هم همون بازرگان موسیلی دیشب آخر شب از خانه من رفته و باز در را نوسته و دوباره شیطان به سراغ من آمده. این بازرگان باعث همه بدبختی های من است و سبب شده که من دوباره امیرالمومنین شوم و با صحنههای های روبرو گردم. در این موقع ابان حسن کرد دوباره به خواب رود. شاید در این فاصله شیطان از تن او خارج شود اما در همین لحظه بانوی زیبایی که در کنال بستر او بود، با صدای نر و درنشن خود گفت، یا امیرالمؤمنین، جسارت می کنم، ولی اکنون روز فرار و کارهای جاری آغاز می گردد. حسن گفت ای بانو مرا را با خلیفه اشتباه گرفته بانو پاسخ داد، آیا خلیفه سر شوخی دارند، تصور می کنید من بعد از چندین سال خدمت سرور خود را نمی در این لحظه، ابوالحسن چرچپایی خود را با دستهایش مالید و همه اطراف را با دقت نگاه کرد. آن وقت مطمئن شد که آنچه می در عالم بیداری است و باید بداند همه آن صحنه هایی را که در خواب یک ماه پیش دیده و همان وقایعی را که با آن روبرو گردیده دوباره تکرار خواهد شد. خلیفه هم در مخفیگاه خود مرحله به مرحله از گفتار و گفتارهای ابوالحسن و سیمای شگرزده او لذت میبرد و از شدت خنده بیحال شد بانوان قصر زیر بازوی ابوالحسن را گرفتند و او را تا وسط تالار که همه نوازندگان مشغول نواختن بودند آوردند ابوالحسن دو از بانوان را اشاره کرد تا در کنار او بیایند آنگاه از آن دو پرسید آیا من خلیفه هستم اندوانان زیبا پاسخ دادند خلیفه به سلامت باد البته که شما خلیفه اید دیروز دستور دادید تا پیش نماز محله و تا شیخ ریاکار را تازیانه بزنند و همچنین یک هزار سکه طلا به مادر ابوالحسن که در همان محله زندگی میکند بپردازند و شب گذشته در سه تالار خوردنی میل فرمودید و در تالار چهارم دستور دادید بانوان دور شما حلقه بزنند و برایتان آواز بخوانند و آهنگ موسیقی بنوازند و به ما اختیار دادید و افتخار دادید تا از دست ما شراب بنوشید تا آنکه به قصر خواب آلوده شدید که بی اختیار شما را خواب را بود و تا چند لحظه پیش در خواب بودید تمام قلامان و خدمتگذاران حضرت خلیفه آنچه را که به عجرساندین تایید خواهند کرد و هر که را بخواهید به حضورتان یابد و از او پرسش فرمایید ابو گفت بسیار خوب سخنان شما را قبول دارم اما شماها همه دیوانه هستید و متاسفانه خیلی هم دلربا و زیباید قبل از اینکه امروز شماها را ببینم در خانه خود بودم و قبلا هم مرا به تیمارستان برده بودند و مدت سه هفته روزانه پنجاه ضربه ی تازیانه به من می زدند و حالا هم اصرار دارید به من بپذیرید من خلیفه هستم بانوان زیبا همه با هم گفتند حاضریم سوگند یاد کنیم که شما از دیروز تا این لحظه از این قرش بیرون نرفته اید و تمام مدت را در خواب بوده اید گفتار این بانوان بیش از پیش بر درگومیه ابوالحسن افزود و با خود گفت پروردگارا آیا من ابوالحسن هستم یا امیرالمؤمنین؟ ای خدای توانا از تو میخواهم به من قدرت دهی تا تشخیص ده هم بر من چه میگذرد؟ و حقیقت اند کدام است آن وقت ابوالحسن حسن شانه های لخت را به بانوان نشان داد و آنها گفت آیا این جای ضربه های تازیانه در عالم خواب روی بدن من پدید آمده است اینها واقعیت دارند زیرا در عالم واقعی دردش را حس کردم و این دلیل جای هیچگونه تردید باقی می گذارد من اگر خلیفه بودم چه کسی جرأت کرده خلیفه را تازیانه بزند خلیفه جایگاه مخفی خود سخنان ابوالحسن را میشنید و از خنده نزدیک بود قش ابوالحسن به یکی از افسران گفت گوش مرا گاز بگیر تا بدانم خوابم یا بیدار افسر مضبور هم به سختی گوش او را گاز گرفت هم که از درد فریادش به آسمان رفت نوازندگان و خانندگان با صدای بلند مشغول بودند و ابوالحسن از آهنگهای زیبا و ترانهها لذت میبرد و آنچنان به وجد آمده بود که ناگهان لباس و دستار را از تنده را و زیر را هم به سوی افکند و دست جتن از زیباترین بانوان را گرفت و به آوازخانی و پایکوبی پرداخت. همه چشم ها متوجه رقص و هنر او شده بود. خلیفه از دیدن این منظره غیرمنتظره، منتظره آنچنان خندهش گرفته بود که فریاد زد ابوالحسن ابوالحسن خیال داری آنقدر مرا بخندانی تا از خنده مرا رودبار کنی؟ ابوالحسن سر خود را به سوی صدا برگرداند و بازرگان موسلی را دید آن وقت با حالت مطمئنی که در حالت بیداری است فهمید که همه این بلاها زیر سر این بازرگان است گفت ها ها تو باعث شدی من با مادرم بزفداری کنم تو سبب شدی تا همسایه ها مرا به تیمارستان برند و هر روز مرا تازیانه بزنند تو وزرگان بجنس همه بلاها رو بر سر من آورده ای. از خدا شن نمی کنی خلیفه در حالی که هنوز نتوانسته بود جلوی خندهاش را بگیرد گفت هرچه تو گفتی عین واقعیت هست حق با تو بوده است. من وظیفه خود می دانم آنچرا که بر سر تو آورده جبران کنم خدا را گواه میگیرم آنقدر تلافی کنم تا تو قلباً از من شوی. آنگاه به بانوان دستور داد عالیترین رختهای سلطنتی را به ابوالحسن پیشکش کنند و بر او بپوشانند بعد از اینکه لباس را بر او پوشاندند هارون و رشید